بسم الله الرحمن الرحیم والمجمل در این درس مجمل و مبین رو میخونیم والمجمل ما افتقر الى البيان مجمل در لغت به معنای مجموع هست جمع و در اصطلاح تعریف میکند مفتقره الى البيان لفظی که نیاز ببيان دارد به بیان یعنی بدون بیان معنیش اشكال دارد واضح نیست حالا که گفت نیاز به بیان دارد بیان یعنی چی؟ والبیان اخراج الشيء من حیز الاشکال اله حیز تجلی و بیان اخراج کردن چیز از حالت مخفی از حالت مشکل اله حیز تجلی به حالت و فضای ظهور و آشکار البته اجبال بودن، مجمل بودن اسبابی داره. یا اینکه به عبارت دیگر حالاتی داره. گاهی موقع کلمه چون معانی مشترکی داره مجمله. مراد از آن شناخته نیست. مثل مثلا قروع به معنی پاکی و معنی حیز هست و گاهی موقع صفتش مشخص نیست مانند وعقی مصالت نماز بخانه خب چطوری این مجمله تا اینکه خود احادیث میان و اینو بیان میکنند گاه موقع مقدارش ناشناخته هست و آت و زکات, زکات بدید چقدر؟ که بعدا احادیث میاند اینو بیان میکنند پس مجمل اونی هست که میازمنده به بیان هست و بیان خارج کردن چیز از حیز اشکال به حیز ظهور و آشکار واضح کردن معنیش رو روشن کردن بیان کردن مجمل با چه چی چیزی بیان میشه با نص لذا ادامه بحث نس و توضیح میدیم و النصو ما لا یحتمل إلا معنا واحدا نس اونی هست که یا لفظی هست که فقط یک معنا داره محتمل یک معنا است معناهای زیادی حمل نمیکنند. اینجوری تعریفش کرده لبتن نس سریح داریم و نس غیر سریح و از این تعریف که نص کرده منظور از نص نس اون نسی نیست که ما میگیم در این مورد نس اومده یعنی اون نصی هست که در مقابلش اجماع و قیاس میاد این نس همین تعریفی هست که دارد می کند و نس آن هست که فقط یک معنا حمل میکند اما اگر دو معنا یا بیشتر داشته باشد اون دو معنا به شکل مساوی باشند اون موقع بهش میگن مجمل اگر یکی از معناها ظاهرتر از معنای دیگر باشد ارجحتر باشد اون معنای ظاهرتر رو بهش میگن ظاهر و اون معنای مرجور رو بهش میگن مواول و النص ما لا يحتمل الا معنا واحدا که مشخص شد و و همتونین گفته شده در تعریف النص ما تأويله تنزیله در معنای نس گفته شده است لفظی که تعویله تنزیله تفسیر اون، فهم اون، نزولشه یعنی به محض این که شما اونو بشنوی ببینی معنیش واضح بشه تعویله تنزیله تعویله اون، فهم مراد از اون به مجرد نزولش هست یعنی شما برای فهم مراد آن، برای فهم مراد آن، مراد تفسیر آن مکس نمیکونید به محض نزول معنیش واضح میشه و هو میگه نس مشتق من منصه العروس مشتق شده از منصه منصه در زبان عرب یعنی کرسی یعنی صندلی یعنی دکوری که میرن روش صحنه اجرا میکنند یا عروسو برش میگذارند در ادبیات امروز به جای اینکه تئاتر بازی میکنند، سخنران میره اون بالا منسه میگند اسم آله است برابر میگه نس مشتق هست از مناسه. این مشتق بودن منظور لازم معنایی چون کسی که بر منصه میایسه دیدنش برای همگان خیلی ظاهر و آشکاره لذا نس هم در معناش چونین واضح و آشکار هست وگرنه نه لغوی نس از منسه مشتق نیست بلکه منسه که اسم مشتقه و آله هست از نس که مصدره گرفته شده اما اینجا الهازه معنایی هست و هو مشتق من منسه العروس، و هو الكرسی که منسه همون کرسی عروس هست پس این شد از درس مجمل و مبین، پس ما آیات و احادیث مجمل بسیار زیادی داریم که خود شریعت در آیات و احادیث دیگر اومده اونا رو بیان کرده، موفق و پیروز باشید.